این قضل خاجه که قشنگ هم کنده شهران نظیری و بنده هم متهم شدم به کمکنوشی برای اینکه اول که دیر آمدم، یه هفتش دقیقه بعدم که تا این راق مزیم، تا به, به اصطلاح نوار آورده سر آهنگو، که نوار یک ساعته بعدم بایدم قبلا امتحان کرده بودم که زبسوت هم اشکالی نهش که درست در آمد، بسطه کار خلصی مقداری ساعت دایش حالا بخون ناصر خاندیدون کجاست بخون یه قذاری که این شد مدشهه بخون دیگه قذاری که من چرا میل چمن نمی کند گل نمی شود یاد سمن نمی کند لخ, لخ سای شد سباب دامن پاکش از چه روی می پاک بنابشدار را مشک خوتن نمی کند. دل به امید وصل تو همدم جان نمیشود. جان به هوای کوی تو خدمت تن نمی کند تا دل من رفت به چین زلطه او سفر دراز خود عظم وطن نمی کند پیش کمان لابه هم می کنم ولی گوش کشیده است از آن گوش, گوش به من... کشیده است از آن گوش از آن... به من آه. از آن نخوره به اون یکی گوش کشیده, گوش از آن... کشیده است از آن... از آن گوش به من نمی گوش به من نمیکنه. با همه عقص دامنت آیدم از سبا عجب که از گذر تو خواهد و مشک خودن نمی کند. چون زنسیم می شود ظلف بنابش پرشکن وقت که, که دلم چه یاد آن شکن نمی کند ساقی سیم, ساق ساقی, سیم ساق ساقی سیم ساق من ساقی سیم ساق من گر همه جورد میدهد دهد کیس که تن جام می جمله دهن نمی کند پشته غمزه تو شد حافظ حافظ ناشنیده فن. قوشته غنبه تو شد حافظ ناشنیده ده تن تیر هزار تیر هزار هر که را در تو فان جا ازالنه فتن سختی من بتونم ازال نشاتان مشکلی این آقای شجریان هم خونده هم بد خونده و هر شنازی را برام که آواز خونو خیلی درجی یکی تاش چکی نیست ولی آهنگش رو خودش ساخته و آهنگساز نیست بنابراین ناچار اون ساقی و سیم ساقن دورد درد می‌دهد اونجا سیم ساقو میگه ساقیه ساقی سیم ساق آهن آنجوی پوری ان خیلی شعر معلوم ده بهم و خیلی بده اگر که پیدا کردم ممکنه بیارم که ببینی که وقتی که یه ام تازه اولی پاشه از گیلیم خودش بیرون میذاره و باردی کاری میشه که کارش نیست و دیگری باید اون کار بکنه این کار می اون وقت چجود ایک میشه می شه در, در هر حال این غزل اولا که اصطلاح غزلیست که کهش میگن چهار پاره یا مصمت قدیم مثل که اون دفعه گفتم آنجلیس که از اون گفتم اینم هم همونطوره یعنی پایهاش یه اندازه است مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون سرد چمان من چرا مید چمن نمیکنه. همدان گل نمی شود یاد سمن نمی کنه دو دوتاست زوجه و مساوی بنابراین میشه که به صورت چارخونه نوشتش به صورت مسمت قدیم نوشتش و خیلی حافظ اینجور غزالان نداره اینا غذرهاییست که میشه زردی خوندش به دلیل این قشنگ دونست میشه که نصرایش دونست میشه گاهی اون نصق نصرا هم خودش دونست میشه که این نمیشه البته این است که خیلی میشه تو آهنگای زردی قشنگ در حالا بنده میخونم سر به چمان من چرا میل به چمن نمی کند هم گل نمی شود یا سمن نمی کند لخلخ لخ سای شد سبا دامن پاکش از چه روی خاک و را مشک نمیکند دل به امید وصل تو همدن جان نمی جود. جان به هوای پوی تو خدمت تن نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلطه او این سفر دراز خود زن سفر دراز خود از وطن نمی کنم پیش کمان ابرویش لابه هم می کنم. پیش کمان ابرویش لابه هم می کنم. ولی گوش کشید از آن گوش به من نمی کنم. با همه اطف دامنت آیدم از طبا عجب که از گذر تو خاک را مشک خوتن نمی کند. چون زن می شود صورت بنقشه پرشکن، و که دلم چه یاد از آن هست شکن نمی کند ساقی سیم سیمساق من همه درد میدهد کیست که تن چجامه می جمله دهن نمی کند کشته خمزه تو شد حافظ ناشه می دهن. تیخ، است هر کراف، درد، سخن نمی کنید. ظاهران غزل عاشقانه است، مفهوم محکوم اینا نداره به احتمالان غزل دوستانه و عاشقانه است، شاید انوال روزگاه جوانی و حافظی، دیگه ما حدس می‌زنیم، همین بودی مثل رمال‌ها و جادوگرها و اینا، اینا حرف علمی نیست که می‌زنیم، ولی به نظر میاد از حالا هوای غزل، و از معانی و مزامینی که در این غزل به رفته که این مال دوره های جوانی باید باشه و اون جریانات و دانی، سرود عاشقی و اینا هست. هیچ ارخان و تصوف و اون مسائل و اینا در این نیست. چمیدن یعنی به ناز راه رفتن بنابارین سر به چمان یعنی سر که به ناز راه میده یعنی معشوق سر و چمان من چرا میل چمن نمی یعنی چرا معشوق من نمیاد به پاک نمیاد به گردش چمیدن داریم چمان داریم یک چمانه هم داریم چمانه و یعنی جام شراب. چمن هم شباحت لفظی داره با چمیدن و چمان و چمن و نه اینا, اینا رو باش بازی میکنه همجور که کرده دیگه حافظ سر به چمن، در زمین بگم که سر رو فقط کسانی میتونم رفهمن که یعنی چی که شیرازی باشن یا لعقل شیراز رفته باشن و مفتیل مونده باشن برای هیچ جای دنیا، اون سربه به اون اعتدال و به اون قامت در حد دوازده متر، پونزده متر، صاف و این وقتی که آراستش می درست مثل یه شعله هم اینجور تاملا بخشی یا مثل زن زیبای یه قد بلند که چادر فرش کرده باشه این دامن یعنی این دوقه را خوبارت حساب ناحق پای میاد بزرگتر میشه نهایت تناسب و زیبایی رو داره به خصوص سروایی که معروفه به سرو ناز در همه جای ایران سر هست ولی هیچ کدوم سرو شیداد نیست یک سرو تاریخی بسیار بسیار مهم هم بوده سر کاغشمرد و او است که به اعتقاد زردوشتی ها مقدس بوده و زردوش شاخ او رو از بهشت آورده بوده و کاشته بوده و به همین سر سرو کاشمر در آین زردوش مقدس سرو قافتفر هم بهش می کن قافتفر با به نت دو نقطه این داستان خیلی مفصلی داره اولا سرب درخت خیلی خیلی پاهند شوید یعنی گایی هزار سال بیشتر و کمتر از عمرش میتونه کنه دکتره. اگر این در زمین استوار کنه و جایی مناسلی باشه سنش به هزار و بالاتر و بالاترم میره. و گفتن که متوکل حلیفه عباسی یه قصدری ساخته بود برای این سالن این وست این تیر چوبی بلند میخواست این تیرای چوبی رو من یادمه که دوره بچگی ما به اینا میخواستن هممال همماله وارده این بوده که سالن وقتی تن بوده تنهای تنود این تیرهایی که میانداختن روی سقف که این حسیران میگذاره این کم میده در یه دونه تیر دراز از این واسه دو راضی که این ارض اون سالون و اون اتاق رو دو قسمت تقسیم اون وقت تیرای کوتاتر میذاشتم تا نصف این اون که هم تا نصف این این تیره وسط رو شبودم هممال و معمولا از ارتفاعی بسیار بلند این گرون بوده و کم بوده و پیدا نمیشوده بعدم از یه حد بیشتر نبوده و همین دلیل نمیتونستن بلندتر از یه میزداری سالن بسازن من شوخی نکردم تو به تو وجود نداشت متوکل ساران بزرگی ساخته بوده و بهش میگن که تنها درختی که هست درخت سدر است در قاشمر اینقدر شین نصیچاناستو علاوه دوستان انگشتام تو سی میزنن دیگه آدمایی که خب چیزی نمیکنن و رسالت حساب شخصی ها سایر مسائل به هر حال میگن که این چیزه خوبه خیلی... من مناسب قفص خلی میان تحصیم میگیرن که اینو چیز کنن زردشتی ها میان جمع میشن و میگن آقاین برای ما مقدسه و فلان و فلان و چقدر چقدر میلیون ها پولای گذاق میگن که ما به دستگاه خلیفه به تزانهی خلافت تغییر میکنیم که از این تحصیم دیگه بعد میگن که ما در کتابهامون همون خوندیم که این سر انداختنش سونه و هر کسی که به این سر سو غصبی بکنه حتما به جوز خواهد مورد و ما اینو گفتیم حالا که شما میخوادیم خواهد کار که شما خواهد باشیم بازم طبعا بفرم آقا با سر بازم بازم خیلی خوش آمدیم شما خوبیتون گولین آقا خیلی ممنونم عزیز من حالی چطوری؟ بپرمین از کنم که میگن ما اینا رو گفتیم که شما بکنیم میگندم بعد میگوید که وقتی که این درخت رو انداختن صدها هزار مرک لانه شدن و بچه‌هایش رو که در ها این درخت بلی‌میدان 20 متر مثلاً قدش بوده بودن همه ریختن زمین و هزاران گوزفند که در سایه این ساعت آسایش می‌کردن که بیابون‌ها این, این سایه در مناطق کدیمجی یک چیز حیات بخشیه که نباشه به کلی چیز می‌کنه اینا همه به یون و سرگردون شدن و برد شدن و مغاضیر زیادی گفتن این شاخوبرگوایی چه زدند چه قدر جارو گرفت و بعد نمیدونم چندین حالا جزئیاتش چندین خاطر رو اینا هم رو بار کردن که به صورت ردیف به صورت قطار مثلا 20 تا نه نمیدونم 30 تا قطار که هست اینو بذارن رو یعنی بلند فر می‌ذارن رو همه اینا اینا با هم نابود شدن و از کاشمر از اون سمت کبیر از توی این ریزار اینو ببرن و برسونن تا پتا وقتی که درخت رو به ورزاد رسوندن جنازه متوکسل از دروازی دو گل ورزاد کنم که قصه سر به یا سر به رو در لغتنامه دیر یا در دارات علماره مرحوم مصاحب اونا می ببینید و خیلی خیلی در ادب فارسینی مزامین زیاد هست در این مورد در سروش اسفانی تحتیده ای گرده از فتایش ناصر بینشا آمد برم به زلف یاراف، به جبین، حوض، به حریش، زیدنه و سر به در چین زلفکا، مشکل، سیستت بند در بند زلفکا، مشکل، سیستت هزاف، چین باید در کاش نبود نبوده چنون ترک محروض در کاش نبود نبوده چنون ترک محروض در کاش مرد نرسته چنون سر براستین بودیزه بس حلاوت و تو سرخیش در دلپ گفتی بلوش گلت سرشته به با قنج و با به نزدیک من نشست با رنج و با ملال مرابیت هم میشین. گفت از قراغ کیست که بیدم تراغ ملو گفت از قراغ کیست که بیدم تراغ همین گفتم که از قراغ بهار از خوزن من دوب از بهار خورم باشم همین هزین امروز بامدار شدم سوی بودستان دیدم توهی مقام گلو جاوی یا جاو سمین زاغ است جاوی بل شده مقی ماق است جاوی سلسل دیگدم شده مکین بانگ زغن درو عوض بانگ اندلی باق خونک درو عوض باق انبرین بگرفت بر جاوگه سنبل و برجشت بار جاو گشنبول در زیر برگ سبز و سمبل شده تخین گشته قراق بر زبر شاه نو نفرین نوشته بودی بر جای آفرین بدریستم به در بر حوالی بوستان چند در بهار رو به حضرزه فرین رفتم فسوز یا نزدیک آنطرفت چند در باغ خورده بودم با توصاف فیننیپیممانه. یعنی دیدم خزان رو از آن نزحت با، بر دریده بار صلب ها به اونیم بکسست مهرگاه مطاب کنده کرده پا پیرغ یا ها, ها پی در برش از گفت پرستین با من چه گفت؟ گفت منانم که در بهار هر روزه گل ببردی از من به آفیم جز نزد من نبید نخوردی به بوستان کرده میان بوستان بودی مرا آبوزیم زیرا که بود قامت من در میان با ماننده تر به قامت آن سر به چون داشتم به قد نگاه تو نسبتی هم بارد دل به قامت من داشتی دهیم چشم نکردی از پس خوردا یا به ما بات آن من بعد نصاب که تو بودستیم چنین چشم نکرد یا تو من شدی یک و هست کنون ما فر بسیار کرد. از منو از عهد من گله من نیست گشتم از وی بسیار شعر باگش نمی‌کنم از این دسته شعر کاشمره و به هر حال شعر آیت زیبایی در ادب فارسی و م... چیز و به م... اصطلاح اساسش هم شعرای یازی تا حدی این طور سرد نازم یکی دو تا سرد که توی اون باغ بویا دو تا آقای تا دو تا جواهر شاد بهتر از من بدونن بتونن بگن سرد نازم توی اون باغ ارم دو سرد از یه یه سرد خاص است سرد نازم بویا سرد شمان من چرا میل چمن نمی کنه همدم گل نمی شود گل به معنی گل سرخ بار ها یا دستمان نمی کنه لخ لخساز شود صبح لخ لخه اسم گرد مؤثر سیاه رنگی مثل قالی و اینا که خانم خانمها به زور تا شونت سیاه روش بیبده این روش مثلا لخ نخه صبح بعد لخلخ ثابیت یعنی بوی خوش و عطاق پراکنده کرد خلاص داشت خالی هم سیاهی که اساس اینا هست یه ناچار ناچارد پر لخلخ تای شد سبا. یعنی با هاش با هاش شد با هاش به دامن پاکش از چه روز خاک بند را مشک خوتن نمیکنه. میگه با اینکه که با شده چرا نمیاد در بنفشزا محشوب چرا نمیاد تا که بنفشزا رو مشک خوتن نمیکنه. کنه بخشی است در الان وجود مغولستان، چین جنوبی اون آهوی معروف مشکین مال این ناهی هست آهوی خوتن حافظ میگه مجدگانی به ده ای خلوتی نافد و شای که سهرای خوتن آهوی مشکینا بنابراین آهوی مشکین مال سهرای خوتنه میگه که چرا معشوق نمیاد به بنفشزار؟ تا از قدم او و از مقدم او خاک بنفشدار چی بشه؟ مشک خوتن دل به امید وصل تو همدم جان جان شود، جان به هوای کوی تو خدمت تن نمی. میگه همه اجزای وجود من تو اصلا داغم کردیم دل به هوای اینکه در خدمت به امید وصل تو طرف جان نمیره خاری با جان من نداره دنبال توست. جانم به هوای کوی تو خدمت تن نمی کنه تا دل هرزگرد من رفت چین ظلفه او یعنی از که عاشق شدم تا دل گرد من رفت به چین ظلفه او زن زن سفر دراز خود از بطن نمی کنه دیگه دل من از وقتی در چین ظلفه او جا کرد دیگه قصد بازگشت نداره بزنش کنم که کلمه ی گرد یک آلتی هست در, در یراق واقعی و اسم اون کسی که گلابتان اینا درست میکردن و یک کاری هست که سپرنو و ملیله اونه منشو درست میکردن یک کاری هست حالا یادم دیدتون میگم یک کاری نوع بافندگی اینا هست و با نخ کار میکنن نخ به صورت کلافه این کلاف رو میاندازن روی یه چیزی که مثل یه منشور مربع القاعده ناقصی کلاف رو میزن روش این روی محوری که میتونه دور خودش بشرفه و خیلی اینو ربون درست کردن این سر که میزن میزن به چرخ و میچرخونن که این دوره خرایبچه اون هم دور خودش میگرده اون که کلاف می دورش و باز می‌کنن، اون روش میگن هر گرد نه دود که نخ روش می پیچن اون هرزگرد کلات رو می روی هرزگرد تا واشه پیچیدش دوری دود چرخه آلا یا چرخه ماشینی یا چرخه حتی دستی دستی این این نخ دورش گوشیده می شه. این نخ از کلاف میاد. کلاف روی روی که اون آلت خیلی به ربونی و آسانی دور خودش میچرخه چرخه اون که هرزگرد فادل هرزگرد من راست به چین زول او سان سفر اضرات خود از وطن نمیکنه کیش کمان ابرویش لابه هم همین اینجا در مورد کمان باید بگم که اصطلاحاتی داره از جمله گوشه کمان کمان گوشت اصلا سیستم کار کمان شاید شما ندونید الان این چیزهایی که درست میکنند مثلا تیر کمان کشی میکشند باید بل میکنند باید که اون نخی که به کمان بسته ذهه روده است و ذهه گستن خاصیت شدید که اگر هر چقدر بکشیدش یک میلیمیت هم کش نمیاد. باید کش نمیاد. پاره میشه ی اتشار از هم پاره میشه ولی در نمیشه کش نمیاد بعد میان یه چوب بسیار محکم و دو سرش میگیرن نزدیک میفهند یه ده کوتاه همیون بهش که این اینو خم نگری باشات این چوب چوب از چوب خیلی خیلی محکم چوب مخصوص این کاره مخصوص چوب ساختن کمان بعد وسطش یه دسته داره که رسیان قبضه یعنی جایی که میگیرن، اونو میگیرن این زه رو میکشن ده که کش نمیاد که ده هم که هست هم وقتی زور میارن، عوضی چطور میشه دو سر دوشاه های کمانه که به هم نزدیک. یعنی این خم این های خمتر میشه اگه این دیگه باید یواشه باش خم میشه این که می میکشن از وسط این خاموش. بعد به محض اینکه دستورد دارن این همون کشمیت کش این با که خم شده یهو راست میشه و این حرکتش تیر رو پرتاب میدونه اون دو سمت دو سر کمان که زهر رو بهش بستن اونا رو میگن گوش و گوشه کمان دارن یک دوباره این که کمان رو وقتی که می‌خوان خیلی خوب بکشن باید تا گوش بکشن یعنی اون قبضه کمان رو باید برسونه دم گوشش تا کمان کاملا کشیده بشه و یکی از اه... قواعد و مقررات پهلوانی این بوده که وقتی پهلوانی میومده، کمانش رو زده میدون می‌گفتن هرکی لوتیوی این کمانه من بکشه و طبیلی کسی که زور بازنش با اندازه اون پهلوان نبوده نمی‌تونست کمانون بکشه چون ست بوده نمی‌تونستن بکشه. بکشه و به عکس اگر کسی پهلوان‌تر بوده انقدر می‌کشته تا این کمون بشکنه این قاعده‌ی کار بوده. حالا این اشاره به اون اصطلاحات و اینا یه چیزه بوده در روزگار حافظ کاملا عادی و جایی بوده همه می دنستن, همه می دیدن, همه خبر داشتن این که ایش تا ایش مشکل نبوده اما الان مشکله پیش کمان ابرویش رویش لافه ولی گوش کشیده است. از آن گوش به من نمی تا گوش کشیده بوده من کنه زده اینی که من کمان از لاغه لابه هم میکنم ولی گوش کشیده است. از آن گوش به من نمی کنم. با همه عطف دامنت آیدم از طبا عجب که گذره تو خات را مشک خودن نمی کنه. اینجا های توجه فرمین مشک خوتن دو دفعه خافیه یه دفعه بیت دو یه یه دفعه این بیت که بیت چی که در عوضش بعضی نسخه ها بیت های دیگه ای داره که اینجا تو نسخه خانلدی نایمده یه بیتش که در نسخه همیگه آمده دی گله ایزه تو کردم و از سر خصوص گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کن. یه بیت یه وقتی دیگه دست خوش جفا مکن آبرو رو خم که فیز ابر بیگ مدد استرش که من در عدن نیکن اون مشکفتن رو دور در عدن گذاشته عدن بندهیست در یمن یمن خیلی و دریای اونجا هم که موروارید زیاد داشت، یکی از مراکز سید موروارید بحرین بوده در خلیج فارس. یکی هم عدن و خلیج عدنی دید اینه که در عدن یعنی مروارید عدنی میگه که آب من رو دست خوش جفا نکن برای اینکه عبر بیمدده سرش که من در عدن نمیسازی. دید قصه افسانه در حضیز ساختن ساختنه مروارید رو هم نیدونید گذشتگان خیال بیکردن که صدف میاد روی آف سطح دریجا خودشو وا میکنه نرم میگه خودشو باز میکنه بعد بارانی باران, مح... باران ماه نیسان که بیاد یه قطری با شرایط محسوس که بیفته توی این صدف این اینو نگه میداره و پرورشش میده و تبدیل میشه به موربالی همین قصدر و در چیزی آورده که اکثر شما شاید کتابی در بسلامی خوندید یکی قطره باران زعب چکی، تجل شد که پهنای دریا بودید که جایی که دریاست من کیستم؟ در اون هست هر قای من نیستم تو خود را به چشم حقا بدید صدف در کنارش به جان سپهرش به جایی و ثانی تار که شد نام و لعلو بلندی از آن یا پوپ هست شد در نیستی پوپ تا هست ولی این افثانه چنین چیزی اتفاق نمی افتحهده صدف حرکت اصلا نداره یعنی اصلا یکی سنگ رو تنها حرکت دارید که داره اینی رو باز می‌کنه و خوردریزه، مواد موادی و چیزایی که توی دریا هست از اینا هم ترزیم. علت فیده شدن مورواری این است که یه وقتی زیر دریا وقتی که جریانات آب به هم بخوره، ماهی ردچه، طروقی بشه، دوی بشه این شنای بسیار ریز سرکه دریا یه دونهش می‌کنه تو تن این حیفونه بست این نرمتنه دیگه، این رو بشونگن نرم ها این توی صدف هم که این خود مروباری درخشان و بر این اینو از ماده آهکی از وجود خودش ترش فهم می برای اینکه زبر نباشه اون تو بسترش جاش نرم باشه وقتی این شن توی بدن این، اینو آزار می یه خوردشه چیزی وقتی شب شبستون شده میکنه همون اینا چیز کنه ارث کنم که بعد شروع میکنه دور اینو ترشوف کردن از همون ماده آهکی ترشوم میکنه برای اینکه این آزارش نده این چه مرغودی حالا کمی استراحت بکنم چند دقیقه تا بعد بگم باشه با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب که از تو خاک را مشک خوتن نمی کند عطف به معنی یک تازه دست دیگه الان هم عطف کتاب عطف دامن یعنی اون لایش یعنی اون تو گذاشته قسمت تو گذشته. عطف دامن نمی کنه عطف یعنی بخش تو گذاشته میگه با اینکه تو عطف دامن داری یعنی قسمت تو بودرشد دامن تو حتما میره دست سبا میرسه تعجب می کنم که سبا از گذاره تو خواهش رو تبدیل نمی کنه به مشکل خودم. تو داری میری عطف دامن حرکت میکنه عطف دامن تو به دست باز سبا هم دادی تعجبه که باز سبا هم ی خواهش رو تبدیل نمی کنه به مشکل خودم. چون زنسیم میشود زلفه بنافشه پر شکن، و که دلم چه یاد آنه چکن نمی کند اینجا چند تا مثله داره اولا رو خیلی تشکیه می کنند به زلف دلیلش این است که بنافشه ساغه بلند داره بنافشه ایرونی البته ما بنافشه تبریدی استرام بنافشه مازندارونی ساخه بلندی داره در 10 سانتی یا بیشتر و دست دست از این این زلف اونی که تره بنافشه و زلف بنفشه و اینا. بعد موی خیلی ملایم زیبایی هم داره که او رو هم به نسیم زلف جانان بشمیه می و تره بنافشه و زلف بنافشه و هست خود گلشم چیز کوچکیست گوله خوچه که سرش از پاینه این تویه و مثل چین و شکن این درست اون موهای صاف صاف یعنی اون ساقه های صاف بعد فرش این گلاهی که برگای ریزیز و چینشکن ریزیز دره درست مثل یه بانوی که این اول اقایل موش صافه اون پاینهاشو بعد این ترش چیش ماه میکردن دو کنارش که داشت اینطور. اینه که میگه تنزه نسیم تنزه نسیم میشود ظلف بنفش پرشکن یعنی وقت که ظلف بنفش رو نسیم به هم میزنه و چیم شکنش رو هم میزه و که دلم چه یاد آن عشکن نمی کنه چه یاد آن عشکن نمی چقدر یاد آن عشکن میکنه؟ یه لکه خیلی اینو دارم اینکه یا مرا خنده نگیرد <تصفح> مرا خنده نگیرد یا می شویدی خندنگی این درستم چون زن هستمی می شو از ظلف بنافشه پر شکن و که دلم چه یاد آن اه شکن نمی کند از شکن ظلف بنافشه منتقل شده به شکستن اه ساغی سیم ساغنن گره همه درد میدهد کیست که تن چو جام می جمعه دهن جام مشخص قسمت وجودش دهنی شد که دهن جام از باقی قسمت های دیگهش گوشادتره دیگه جام پهاش از چه میلپانیتر باریتر میشه گوشادیتر ترین قسمت دهنی این هست که تماع وجودش <تصفيق> میگه اگه ساقی من هم دوردم بده کیست که همه تنشو مثل جامعه همه تنش دهن نسته ساقی سیم، ساق من گر همه دورت میدهد کیست که تن تو جاملی جمله دهن نمیده یعنی همه کس اینش یکیان انکاری که این کاری نمی کنه یعنی همه این کاری یعنی اگر ساقی من دور ده همه کس مثل جاملی جمله وجودشون رو توان وجودشون رو پردیل به دهن پشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند ناشنیده پند صفت حافظه صفت مفعولی مرکبه حافظ پند نشنیده یعنی هست نشنیده پشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند حافظی که پند تو سرش نمیده میگه اگر کسی از سخن دردش نیاد بعد پرتکن اول میگن این کار بکن این کار بکن یا این کار نکن یا فلان بکن اگر قبول کرد, کرد. اگر نکرد اومد به زور بامیدارن این از که میگه که حافظ پشته شد چرا پشته شد برای که حرف که چه پند که دادن نشنید خودش میگه میگه پند و نشنید خب کسی که از سخن دردش نیاد سرفاش با چی میوفته؟ با تیغ کشته غمزه ی توش رو تاخذ ناشه میگه پند سزاست هر را درد سخن نمی کند. درد سخن نمی کند یعنی سخن مایه دردمونه میشه درد سخن, درد سخن نه غزل بعدی، غزل درجه یکیست و بنده خودم بخونم بنده از اول کنید؟ در ما در نظربادی ما بیستبران حیجانم من چنینم که نموندم دگر ایشان آقلان نقطه پرداور وجود ولی اشت آمد که در این دایره سرگردان نیست با لب دهنان و خراب ما همه بنده رو این گوز خرابندان محسطایم و هوایمه و محسطایم آخذر پرسی پشمی به درو نستن عشق و دل حضیار زهی لاکه دیم عشق مستحبه دیده من تنها مید. ما خورشید همین آدنی خورشید همین و به شب ترقه اعما نرسد که در این آدن صادت نداران بگران مگرم چشم سیار تو بیادی برنامه دا از طوری و مفتید همیت گر شوند آده هزمیشه ما مخبچگان بعددین قرقه سوچی به درو نستانند گر به نوز از جهه ارغاق بر از طوری کباب افرودان به زاهه در زندگی حافظ نتوند گفتی این نه، نه، خیلی بردن خیلی بردن؟ ما نظربازی ما بیخبران حیران من چنینم که نمودم دیگه انسان‌ها آبلان نقطه فردار وجودند ولی اشتاننت در این دایره سرگردان. عهد ما با لب شین دهنان بس خدای ما همه بنده و این بوم خداوندان مفتسانیم هوا هوایمه و مطرب داریم آه اگر خرقه پشنیم به گروه نستان لاف عشق و گله از یار زهی لاف درو عشق وازام چنین مستحق هجران جلوگاه رو که او دیده من تنهانی ماه خرشید همین آگنه وست خرشید به شبقره اعما نرسد که در این آگنه صاحب نظران حیران است مگرم شیبه چ... مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار ورنه تو و مستی همی کست گر شونداگه از اندیبشه ما مقبچگان بعد از این فرقه سوکی به گروه نستانند گر به نزهدگه ارواه پر تو باد اقل و جان گوهر هستی به نسار اکشانند زاهه در زندیه حافظ نکند چه شد دیب بگریزد از آن قرآن خیلی غزل درجی یکیست غزل الفانیست تدریست کاملا و یکی دو تا بیتش بهش مثل این به گرونستانه بیت هست بیت چهارم اونجا هست و هوای می مطرب داریم آه اگر طرقه پشت به بعد که نهم نهام گرشوند آگه از اندیجه ما و بچگان بعد از این ترقه سطور این پیداست که یه بار حافظ به تو ساخته بعد پشش نایمده عوض کرده دوریدش کرده و این در نصرهای مختلف بوده استادم آوردن میگه حال دو و چهار و شیش و هشتا از نصرهایی که محقظ تار مرمون دفر خانداری بوده این غذل رو دارم در بازی ما بیخبران حیران هست درسته کسی که هر کسی که از هر عوالمی اطلاع ندشته باشه بیخبر نیمونه ازش که هر چی میخواد باشه من یه بار گفتم صدی بله نادر لشکر کشید به هند. در عثمانی بود لشکر کشید به هند رب تحریر گرفت آه آه این کار یعنی چند هزار تا آدم رو چقدر راه باید ببره اینا روز سه دفعه باید غذا بخورن راهشون باید انتخاب بشه دشمن نباید حبر بشه، ندارن میاد، خودشون، دشمن سرشون تاخته بیاره بعد بساهل و سور و سات و خوراک و بسات اینا رو درست کنه و هزار جور کارهای خوردریز کچولو کچولو کچولو وقتی آدم آگاه نیست از مسئله اصلا بارشت وقتی وارد یه کاری شد بعد اینه که او چقدر درد سر هر چقدر گرفتاری هر چقدر مسئله می که بیخبران در این کار ما در نظر ما حیران چیزی ازش نمی هم. من همونطوری هستم که نشون می یعنی ظاهر و باطن هم یکیه من چون اینم که نمودن همون طورا که نشون نمودن به معنی نشون دادن است. و این که حالا به صورت یه خود معدبانهی کردن میگه مثلا که حرکت کرد که حرکت نمود این درست نیست نمودن به معنی نشون دادن. به همه کس به نمودم خم ابرو که تو دادی این نشون بذارم به همه به نمودم هم عبرون که تو داری. ماه نو هر که ببیند به همه کست به نماید این نشون دارم لغت ها برای می کنیم نمودن هم اونجایی کردن به کار می بریم بعد اونجایی که نمودن باید معنی خورش به کار بره نداریم. لغت به من چنینم که نمودم میگه من ها چنین چون و این یعنی اینطور چون و این میشه چونین چون و آن میشه چونان چونان یعنی اونطور چونین یعنی اینطور اصلشم چونین چونین و چنین بوده کم کم شده چنین, چنین من چنینم که نمودم دیگریشان دارم آقلان نقطه پرگار وجودم یه محفظ مفصل هست بحث و جدل بین عقل و عشق اولا که حدیث هست در این مورد که اولین وجودی رو که خداوند آفرید اولین چیزی رو که خدا آخرید عقل اول ما خلق الله الان و اساس فلسفه قدیم هم همینه مرا که این جاذبه و این قصه های علوم جذبی که نمی‌دونن صحه که اینا حرکت می‌کنن سیارات اینا همرو خب این،, این این این حرکت این باید کسی یه چیزی معرفی می‌شد مثلا خیر خود ذات حق مرا در تقابل قابو ولی ذات حق چجوری انزاد حق دستور میده به آسمون که بگرد یا به افلاک که بگرد اینو ها بودن برای این که تشریفاتش رو درست بکنن گفته بودن که نه تا فلکه حالا اینا روزیاتش مفصله من الان نمی کنم نه تا فلکه مثل نه تا کره مثل نه تا دوسته پیاز توی هم دیگه هر کدوم این افلاک یه تنهی داره یه جسمی داره و یه عقلی داره و یه نفس عقل چون اولین موجود است که خداوند آفریده بنابراین لطیفترین موجود مادی هم هست و عقل قابل اینه که مستقیما امر الهی برای او ساده بشه بنابراین خداوند امر به حرکت افلاف و عالم و همینه رو اول بار به عقل ساده ده. بعد میگه پایین مرتبه عقل یه وجود مادی دیگری هست که اون روش نگهن نفس نفس به لطاقت عقل نیست اما به خشونت و کسافت کسافت معنی فشوردگی ها معنی فالیسی به فشوردگی و خشونت ماده هم نیست عقل که عمر الهی رو میگیره ابلاغ میکنه نفس نفس چون یه سره با ماده نزدیک کره میتونه از یه طرف با عقل مربوط باشه از یه طرف با ماده مربوط بنابراین امری که از مصدر جلال از ذات حق به عقل میرسه عقل این امر رو منتقل میکنه نفس نفسم این امر رو منتقل میکنه به اجسام به افلاق باشه دیگه اون وقت نه تا فلکه فلک که بهش میگن فلک اطلاس این فلکیست که ستاره اصلا روش نیست و محرک اولیه همه افلاک دیگه اونه و در استراح اهل شعر اینو تطبیه میخوانند با عرش بعد زیر این فلک نهم فلک هشتم فلک هشتم فلک ستاره های ثابتی فلک همه ستاره های آسمون این فلک هشتم فلک ثوابت که اینو در اصطلاح شعر فترشون هم با بعد فلک هفتمه که فلک زوهله بعد شیشمه که مال مشتری هم تو فلک هفت سیاره هست به قول خودما تا میرسه آخرین فلک فلک اول فلک قمره که ما رو میگردونه بعد از او قره خاک که معتقضا مرکز عالم اون وقت میگه هر کدوم از این افلاف یه عقل دارن یه نفس دارن یعنی فلک نهم عقل اول و نفس اول محرکه دوست بعد نید فلک هشتم عقل دوبام و نفس دوبام که فلک هشتم هست عقل صرف و نفس صرف بام ماره فلک هفتان دوست میاد تا عقل مرتبه نهم هم که های پایین میاد های میشه که به مادده نزدیدن میشه عقل فلاک قمره بعد عقل دهم، ده اون آخرین و کچکترین و ناشیسترین جزی از عقل که موجود داره تقسیم میشه به اغول جزگیده یعنی از هر کدوم یه قطری به افراد وشر و کسانی که عقل دارن اینه میگن عقل کل ج... شمیدی که عقل کل و اغول جوزیگه اغول جوزیگه عقلایست نبینه اشخاصی در هر حال چون حدیثی بوده است که اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود و امر حرکت عالم و فعالیت در عالم اول بار به عقل سادر میشه و از عقل منتقل میشه به دیگران این است که آخوزم میگه چی؟ میگه نقطه پرگار وجود اما پرگار تا نقطه ده یکیشون وسط بایستاده ثابت یکی میگه میگرده میگه آقلان نقطه پرگار وجود <تصفيق> ولی تنها عقل نیست اشکم هست عشق دانت که در این دایره سرگردانه اون یکی پایه سرگردانه آقلان نقطه پرگاره بود ولی عشق دانت که در این دایره فرگردان بارها و بارها و بارها حافظ یکی از موارد که اصطلاحات لیازی رو ازش استفاده شعری و هنری و عدبی کرده همین کلمه پرگاره بارها. آسوده بر کنار تو پرگار می شدم مرادشون لنگه ایست که کنار می چهده. آسوده بر کنار تو پرگار می شدم دولان تو نقطه آقابتم در میان گیره اینکه که کنار می رسم یه دایره زد من اون وسط هم. آسوده ور کنار چو پرگار می‌شدم دوگران چو نقطه آقابتم درمیان کرد نظایر این خیلی که دیوان حافظ هست یک جام یک پرگار آمده در شعر حافظ به معنی مکروهیله که اون ربطی به این کلمه پرگار مهندسی نداره میگه گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دستا برمش باز به پرگار بگه چون صحبت دایره هست صحبت چرف هست پرگار میره ولی پرگار اینجا منی تدبیر و چارنجی و مچویدن گر مساعد شودم دایره چرخ سبود هم به دستا برمش باز به پرگار آقلان نقطه پرگار بگیدم ولی عشق آمد که در این دایره سرگرده بعد میگه میگه ما خیلی به عقل ساری نداریم عهد ما با لب شیرین دهنان و خدا همه این عقل و اینا سر جاش اما اولین کسی که حرفش رو گوش کرد حضرت آدم جد علای ما جناب والده ما جناب حواب بسید یعنی حرف هفوار رفت بالاتر همه اون حرفان گفته بود خداوند این گندم رو نخور این کار نکن اگر گم توشه همچین چه فلان ولی بله خانوم که درست فرندم قضیه خبر شد خانوند. اینه که میگه که اهدما ما اهده ما بالد شیم دهنان بست خدای و اینه اگر از داره فلسفی و ارفانی هم بفن حیرت است که از که آدمیزاد دوتا جنبه داره دیگه یه جنبه عقلانی داره یعنی از حالت خیرت داره که از یه جهت حاکم برمجود بشه یکی هم احساسات و عواطف که جنبه عاطفی قضیه اون از عشق وجود میاده و همیشه کارهای گندر رو عقل نکرده کارهای گوندر عشق کرده میگه میروم تا انام شهر دیدم. کنم از دست خوب رویان داد آه و دولت ما که نثوان عشق نجات هام چه چی آه دیگه چرا خداوند این که خدافند ما رو اهده بالا رو یعنی عشق رو قوی تر و این درسته برای که هیچ کدوم از موجودات به استثناء آدم این مسئله سه بارها میگه فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان به خواه جام و گلاوی و آدم میگه تو اون در ازل پرتاب و حسنت تجربی دم زده اش میگه جلزه این ای چند رو خشتید ملک عشق این آتش شد از این غیرت و بر آدم این علت این که خلعت خلافت رو به تن آدم کردن و خدا میگه که من میخوام یه خلی جانشینی از خودم روی زمین قرار بدم و آدمزاد رو خلق میکنه به دلیل جنبه عشق بسید نه به دلیل جنبه عرب شد اهد ما یعنی بنی نوع انسان رو بالا بشید این دهنان با خدا. یعنی آدمیزاد و خداوند درش عشق به ودیه بزرگ عهده ما با لب شیدین دهنان و از خدای ما همه بنده و این قوم خدافندان بنده اصلش از کلمه بنده بند. بند یعنی همون زنجیر و بند و خیلی این هشتیه جنوه مبونه هست ای نسبت, نسبت هست. بنده بنده یعنی کسی سرفاش با بنده دید. بنده یعنی در بند آدم دیگه در قلامی که میخوایدن در جونش در اختیار اون آدم این چه بنده بنده یعنی کسی با بند سرفاش هشه نسبت عهد ما بالا به شیرین دهنان بست خدای ما همه بنده و این قوم خداوندان خداوند به معنی صاحب و مالکی اه... یه شاعری هست نام عبدالملک برهانی این اه... پدر امیر موزی شاعر معروفه قابل تحجیب خانم مویدی پدر امیر موزیه و میگن، گفتن که سلطان سنجر یه وقت اشتباهی تیری و این تیر خورد عبدالوالیت برهانی مجروح شد و ساخت منت خدای را که به تیر خدایگان من بنده نشدم پشت رایگان بلی بعدش با همون تیر مرد اتفاق هم اینه که وقتی که میره میگه من رفتم و پرزند من آمد، خلاف او را به خدا و به خداوند بپردن خدا و خداوند خداوند یعنی پادشاه مالک و فرموندبا اهده ما بالا بشید این دهنان بست خدای همون خدا ما همه بنده و این قوم خداوندان هم مفلسانیم و هوای می و فلس جمعش پولوس یعنی پول خور عربی فارسی هست هشیز و اینا چون سکه های ریزی روده اون پولک های رو تن ماهی میگن فلس و فلس پولکه رو تن ماهر فارسی هست هشیزه یعنی چیزی مثل پول خور گرز کچولوه هشیزه یعنی فلس ماهی مفلس یعنی آدمی که سر و با فلسه با پنی سر و داره این شخص با اسکناس و با دلار و صد دلار اینا کار نداره با پول خود سر و کار داره اینو حساب و در اصطلاح حقوقی مفلس آدمی که چی سرچی میدونه از علما مفلس کیه. مفلس آدم است که دارایی که فاق و بدهی هاشو نکنید این آدم بهش میگه مفلس چنین آدمی رو میان از تصرف در انبالش ممنوع می کنید تو انبال مردم رو یه افتاری و نفله کردی دار کردی، هر کار کردی، نتونستی سیر کنی. کنید حالا باعث شده که مثلا یک میلیون تومن بدهی داری دیویس تومن پول داری یعنی هر یه اطمان طلبگارات دو قرون بهشون می با. حالا اگر که اگر بذاریم اگر بذاریم تو این هم تلف میکنیم بنابراین فعلا این کنار تو تخصیم کنیم به طرف تلف این آدم میشه مفلس که برشکستهش میگنید الان قانو برشکسته خب آدم مفلس طبیلیست که پولی نداره یعنی مخارج لاعقل مخارج بالاتر از نون و آب نمیتونه بکنه بلی میگو که ما در عین مفلسی هوای میومطرب رفت داریم هوا یعنی میل و آری لغت عربی هوا اصلا در عربی میخوان بگم عاشق شدم من میگم هوای تو هوای تو یعنی عاشق شدم هوا یعنی هوای تو یعنی من عاشق شدم اون تو زمیر اول شهب هوای هوای میومطرب داریم یعنی میل شده. مفلسانیم و هوای میومطرب داریم خب از کجا تهیه کنیم نیومده بود. آه هر کارگاهی پشمی به گیرو می‌کن. کارگاهمونو بریم رو بزنیم و سرچ نیومده بودم. من دوست داشتم کوراش بیام از مورد. آدم اتفاقا با من جلوی پس در اون روزگار جوانی ما، اون آقا، با خانومی هم دوست و من هم خانم میشناختم هم آقا رو خانم به من گفت که پلانی پس رو امسال که این لباس نوشون نه چون گونده هم اتای قبی میده و بلند دومت قطعش میده اینا زنه که هم زنه لاغر مازد چکندانی بود گفتش که این کچه خسرو رو این گرده گرده من من بگرم اید از برای من, برا من بسید این گذشت رو شب ما با خوصوخان بودیم لباس قدیمی کنشد صبح اومد اداره تو مجلس کار میکردم من اداره توان چیزی خوصوهم هم کارم کارم کارم اومد اداره لباس نوکنشد گفتم که خوصمون لباس تو گفتم چیکار گفت که من بگیرم که دید من, دید من نگفتی گفتا مرد که دیشت تو تنه بود لباس چودترش دیشت تنه داره چی شد؟ ببید چی خوردن؟ چی رو خوردی؟ بفرستم لباسی گرفتم اون لباس رو به مرزت فروش کدشم گفت سی فروختم خونزه رفتم عرق خوردم دادم این زنگ بلند کردم بردشم بردم میامدن باش چهار هم دادم سازن <تصفيق> یک هم صبح تایتی سواشت هم بایده میداره این هم و ده و چهار و یک میشه شکیم. این درست همین قصه خیال نکنیم که این قصه تا روزگاه ما واقعا همینجور ادامه داره مفلسان و هوای میمطرب داریم آه اگر طرقه پشمین به گروه بستن البته درزم این تیر جانسوز طعنه رو به صوفیا و ظاهد نماها هم میزنه که این خرقه ای که نشان زهد و تقواه و نمونه آدم خوبی بودن بنده و ناس اینو میبرن گروه میزرن این قصه گروه گذاشتن هم مهمترین گروه گذاشتن این بود یک قصه یه شاعری بود این میگم برای این چیزی هایتون باشه تون چیز میشه شایری بود به نام سلم عرب معروف به سلم خاسر یعنی سلم زیانکار خاسر و زیم یعنی سلم زیانکار این زیانکارش زیانکار زیانکار از این جهت بود که گفتن که یک قرآن داشت یک مصحب داشت شب دارش مخواسته عرب بخوره این مصحف رو عرب گروه گذاشت در پول پولش عرب اینی که معروف شد سلم خاصر، یعنی سلم زیان کار و این خرق گروه گذشتن و دفتر گروه گذشتن حافظ میگه که در همه دیر موقع نیست چون جای خرق جایی، گروه باده و دفتر جایی همه اینا نشون مبارزه با ریاضاییه یعنی ما هم مهدمی هستیم که راه اونی که رسنه اونو که ببینید ما همون پنلا ولی موقعی که لازم باشیم ولی این رو گروه میذاریم عرض میخوادیم آنچه هم عرفترش هم سرم خاصه روی، اونمان قرارم دوبامون بسیار قرارم ها بسیار زیادی یک چمینه شیخ سنوان هیچتر گرفتار عشق شد اون اول گرفتار عشق اون فریدون شد و اثیره، میو، اون چیز اش اولش نبود اولش دل در گروه عشق باهاده هاش و او گفت و بیا خوبچرونی بکنه نمیم چه بکنه اون واضیه بکن ولی بله دید و هر حال اونم،, اونم تمام حیثیت و آبروت رو در گروه عشق اون گفتر ترسا ببین